خدا شدن و بازار تارس هر بار که چیز فرسوده ای را میبخشی بهره معنوی برمیگیری و من جایگزینی برایش بر برراحت مینهم تو منی و من تو پس چگونه ممکن است از چیزی بی بهره بمانی خدا از من تو مراقبت کند. منظورم را از من تو میفهمی؟ همسان با خدا، من یا خدا، اخیش یا خدا و روح دینک به افقی فراتر می رویم روح چیزی جز آن بخش از خدا نیست که شعائی از نور قدرت خالص اوست بنابراین دیگر خدای مطلق نیست خدا همه است خدا جمیع هستی و نیستی است خیشی که آن را خود میخوانی حقیقی نیست مایه است در عوض خیش حقیقی خداست من بعد این را درک میکنی که تو خدا یعنی حضور خداوندی هستی خیشه عالم، چون من خدایم پس من تو هم هواهم در این طبقه موجب میشود که تو تصور کنی کالبد جسمانی دیگری را اشغال کرده ایم اما حقیقت این است که وجود تو خود من به منزله گسترش وجود خداست عبارت ساده تو بخشی از منی که هر زمان که بخواهم به هر سویی که بخواهم حرکت میکنی درک میکنی میخواهم از این هم فراتر ربم آموزش های استاد ای این حقیقت ساده را فاش میکند که بشر هرگز نمیتواند بدونه یک استاد زنده در این جهان به سر هیچ چیز بدون خدامرد حقیقی هستی ندارد. تمامی جهان‌ها درون او مأوا دارند. او عالم کبیر کائنات است. بنابراین بشر در مقیاس عالم صغیر تنها جهان ناچیزی در حرکت است اما پیش الهیش قادر است به اراده خود در پهنه کالبد جهانی ماهانتا یعنی فیشه کیهانی خدا سفر کنند استاد این موهبت را به کسانی ارزانی می‌دارد که شایستگیش را داشته باشند یا دست کم با صداقت و از صمیم دل جوینده باشند راز بزرگ در همان دل جوینده نهفته است چه جادویی در آن جایگاه وجود دارد که ماهانتا را به سوی او یا او را به سوی ماهانتا می‌کشاند اس اما نه به معنایی که در اعتقادات و فلسفه ها آموزش می دهند بلکه به مفهومی برتر از جایگاه هوشیاری خداوندی جوینده آری هوشیاری خداوندی عبارتی که من به منظور توضیح وضعیتی از دل یا روح به کار می‌گیرم که در اشتیاق شکوفایی رو جستجو جستجون می کند. به این ترتیب مشا در قالب شعور کیهانی میاندیشد که مرحله نخست از هوشیاری به منظور رسیدن به روح است و به بیداری آرزوی هنگفت او برای جستجوی اعلا هلیین میانجامد. اینگونه جستجوی خدا یا ستنام مظهر تجلی یافتهی واقعیت خداوندی آغاز می شود با رسیدن روح به پنجمین ناحیه و تجربه وحدت با خدا آگاهیش به آخرین مرحله پیش از ورود به وضعیت شکوه مند خداشناسی رسیده است پس از عبور از ناهیه پنجم به سوی عوالم بالاتر و دستاخب آنامیلوک اقلیم بینام روح کاملا از هویت و همسانی خود با ذات خداوندی که به خداشناسی مشهور است حوشیار می, می توانی این وضعیت را خدا آگاهی یا خداحوشیاری بنامی روح پس از ترک این وضعیت که منزلگاه حقیقی اوست و در آمدن به عوالم زیرین در امثال و حکم مظهر فرزند ناخلف شمرده می شود حال روح سرگردان را به زنبور اصلی مثل بزنیم که راه کندو را گم کرده است هرچه این مخلوق کوچک از خانه دورتر می شود بستردرگومیش افزوده می گردد تا جایی که بر توری در خانه ای در شهری پر جمعیت می نشیند دیگر یارای رفتن ندارد و جان به جان آفرین تسلیم می کند روح در وضعیتی مشابه قرار دارد چون به ترتیب از طریق کالبت های زیر به عوالم تحتانی راه می آبد. ذهن یا کالبد الی، کالبد لطیف، یا اسیری و جسم یا کالبد فیزیکی اینک روح در پایینترین جهان از طبقات عالم در این کیهان و در این زمین قرار گرفته است. اینجا منزلگاه ظلمت است و تنها نور مریدان حقیقی است که تیرگی شب را بر جویندگان روشن می‌سازد. اکنون روح جان در صلحه در درآمده بیرون از خیش جستجو می کند و خدا را در ارضای خشنودی های تن می جوید و حتی نمیداند که منزرگاهی حقیقی هم وجود دارد. حال روند هستی او معکوس شده و ذهن انان را به دست گرفته است. این روند ممکن است قرنهای متمادی و در طی عدت بیشمار روح به طول انجامد او مشکلات یکسانی را با خود به زندگی‌های بیشمار نقل می‌کند، چون ذهن از لذات حسی مشروف می می‌شود. خداوند مقرر کرده است که روح گذشتش را به خاطر نیاورد. زندگی‌های پیشین از آگاهی او پنهان نگاه داشته می‌شود تا در هر زندگی به تواند مجالی مستثنی یکسان برای یافتن خیش داشته باشد. غالبا روح در مقابل نیروهای منفی جهانهای تحتانی تغلا میکند. تا دیگر انگیزه ای برای ادامه مبارزه نداشته باشد آنگاه در شگفت می شود که آیا این زندگی محتوای دیگری هم دارد؟ و برای نخستین بار شراره الوهیت به درون حوشیاریش راه می آود. اولین بار است که روح نتی سلوک زمینیش در میآد که سرنوشت وی تحت رهبری عبرقدرتی قرار دارد. این همان وضعیتی است که هوشیاری روح نام دارد و آن به بعد روح را متواری بهشت لقب دادهاند. نجستجوی مسیر بازگشت به خانه حقیقی، تخفیف و امتیازی برای روح قائل نمی پیشروی در این طریق همیشه، و برای همه روح های یکسان نیست بلکه سفری انفرادی است برای یکی ممکن است بسیار دشوار و فرساینده باشد و برای دیگری میتواند سریع و سریع باشد و این امر به کارمایی بستگی پیدا میکند که شخص اندوخته و مستهلک کرده باشد میزان اکتسابات معنوی او در چه حدی باشد یا بسته به اینکه سلسله مقاصد معنوی تصمیم بگیرد از آن روح به منزله مجرای معمولیت معنوی استفاده کند یا نه در هر صورت روح دیر یا زود به مرحله یک شکوفای معنوی نائم می آید که معلمین در مسیر او ظاهر می شوند و مدتی بعد به نوبه خود ماهانتا هم رخ می نماید گاهی روح شمعیت شعور که حالی را تجربه می کند گاهی هم حضور مهانتا لازم میآید تا او را از پس هجاب توهم بیرون کشد و برای مرید مجالی را جهت نظرانداختن به جهانهای درون میسر سازد رویت نور و شنیدن جریان صوتی اینگونه روح مهانتای زنده را می خدامد راستینی که میتواند روح را آموزش دهد و مرید را در دستان خود حفظ کند در قدم بعدی پیرو باید مسئولیت انزوات خویش را با به بستن های استاد به عهده گیرد و تمرینات معنوی اکنکار را به جا آورد. فقط با تمرین مراقبه منظم و به کمک جریان صوتی می توان امیدوار بود که روح راه بازگشت به منزلگاه خداوندی خود را باز یابد. مراحل بیداری روح از قرار زیرند: نخست با برانگیختن آن به واسطه نشان دادن لمحه ای از نور بیداری سپس به دیدار ماهانتا نائل آمده و غالبا بخشی از شعف تجربه شعور کیهانی را میازماید که در طبقات پایین بخش ثانویه آگاهی خداوندی حاصل و شامل هوشیاری از نواحی چهارم و پنجم هستی می‌شود در آخر نوبت به حوشیاری خداوندی میرسد که شامل تجربه طبقات پنجم تا نواهی بینامه خدا میگردد به زبان مکاتب اسرار، این وضعیت را وحدت کامل و آگاهانه با خدا نامیدند در نظر کسانی که هنوز چشمشان به طور کامل باز نشده است تفاوت های زریف بین وضعیت های حوشیاری مخدوش و مبهم بوده و تماما قابل درک نیستند اما پس از سفرهای مکرر به طبقات درون نرمی که این مرحله تنها نتیجه افشای یکی از رازهای خدا و روح است و تجربه درک و قدردانی را در هر قدم برای او ممکن می ماهاتا راه حلی قطعی برای مسئله رستگاری در اختیار می نهند. اما می خواهم راضی را برایت خاش کنم این امر حقیقت دارد که تو هم می توانی معنوی همسان من داشته باشی اما باید به من گوش دهی و به خاطر داشته باشی که قرار نیست آن کاری را انجام دهی که من میکنم. کنم بلکه باید آن را به کار بندی که به تو میگویم. گویم من پیر خطاب می کنید چون شیوه های من برایت قابل درک نیستند به هر حال اسرالی در زندگی و آموزش من وجود ندارد آدمی هم مانند سایر چشمه های حیات هوشیار علاوه بر کالبد فیزیکی از روح و ذهن هم برخوردار است منشا یا آفریننده در من سودماد، پروردگار، خدا یا هر نام دیگری که بران آن خانده می شود. من حاضر مطلق و قادر مطلقم تمامی اشکال عالم از شکل کیهانی و مطلق من ناشی میشوند روح فردی از خدانش نشأت میگیرد و به نحوی تر راهی شده که دوباره به آن منشه بازگشت کند ذهن یک ابزار است نه انسان حاصل جمع افکار و احساسات و طریق آن روح فردی با ذهن کیهانی که تجلیگاه عالم مخلوق است و ما آن را برام یا کالا می نامیم تماس برقرار کرده و به خدمت در کیهان میپردازد. ذهن عالم تغییر کاملی است که عالم کبیر را انعکاس می‌دهد. در واقع بشر عالم کبیر است و عالم کبیر در او جای دارد. همان که قبلا اشاره کردم خدا درون اوست و او خداست. روح متعال روح فردی است و روح فردی روح متعال است. خدا به وسیله نام و کلمه اک یا جریان صوتی در سراسر پهنه عالم کبیر نفوذ کند. به همین منوال خدا در عالم صغیر هم حضور دارد. جریان صوتی یا اک اگرچه بر همه عالم نفوذ دارد اما با حواس جسمانی بشر قابل درک نیست. راهی را که خدا به سوی خود گشوده است اک یا جریان صوتی حیات می نامیم. آموزش حیاتی آن و چه تمایز اکنکار را با سایر علوم فلسفی به نمایش میگذارد. این جریان صدای خداست که خیشانش را به پای خیش باز میخواند و کسانی که آن را بشنوند حقیقتا سعادتمندند چون شاهراهی را یافتند که مستقیماً به دروازه های بهشت حقیقی می انجامد نور و صوت اناسره حیاتی این آمودش ها میباشند راه آنگونه که که نوشتجات کتاب آسمانی میگویند آنقدرها شباهت به رودخانه ندارد بلکه بیشتر قابل تشبیه به امواجی است که از فرستنده های رادیو و در تمام جهات منتشر می شود این موج از خدا از کانون کیهان کیهان ها سرچشمه میگیرد یادآور می شوم که جریان صوتی دارای دو موج حرکتی است یکی از درون به بیرون سانسریفوک و دیگری جریان بازگشت رو به درون سانتریپت هست. این موج از خدا خارج می شود و دوباره به آن باز می گردد. بر روی این موج جمیع قدرت خداوندی و حیات تا سرحدات بی انتخای کائنات انتشار می آود. و بر روی همان هم دوباره به منشعه خود باز می گردد. هرچند ما تنها با جنبه برگشتی آن سر و کار داریم چون روح برای بازگشت به منزلگاه حقیقی خود به این موج اتكا آمد شب بخیر.